بگو گلی بیاورند، دواگلی بمالند روی زخم زبان، در دهان را ببندند، بگذارند، در کوزه آبش را بخورند، کلمات را در آب دهان لیس لیس بخیسانند، ریس ریس، آب و دوغ و خیار را با توف بچسبانند، هی بچسبانند، هی بچسبانند، تا کاغذ هاول نزند ول نکنند، باد کند باد کند بترکد کرد چشم حسود حسود هرگز نیاسود مگر اسفند دود کنند دود دود دود دود دود دود چیچی چی. دود دود دود دود دو دود, دود چی چیچی چی چی سیال خیال را بگازای بتازن تا حفی ارتضال اسمش هم بشود شر گلی هم باشد، گلی هم همینجا آخرش تا با سفا شود زیرش هم چلچله ها هی چه چه بزنند و هی به به بزنند.